بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب بالعالمين صلاة الله على سيدنا رسول الله و آله طيبين طاهرين المعصومين و لعب دائمت على ردائهن اجمعین اللهم و فقن و جميع المشاردين و الحمد رحمت که و رحم الحمد رحمين بحث تا اینجا تا یه آش آش روشن بکنه بحثی که ما تا اینجا بشرفت این شد که متن مشهوری هست در میان مسلمان ها و در کتاب سه اهل نهر به عنوان اعفل ها آید این متن مشهور در کتاب روایات ما در کتاب اصحاب ما ثابت هست یا ثابت نیست؟ هست کردم اون مقداری که ما الان داریم با عنوان اعفالده ها در کتب اربعه در کتاب فقیه آمده که تماما مرسل این را جبیه و در غیر فقیه هم در کافی یا تحضیب و استثال تحضیب هستم نداره لحیه را نداره اون ظاهرا بحث فقیش به نبود توی کتاب مقنعی من ها آیا ما می توانیم ببعی در کافی نیست از کن درکتو دست دوبرم dah ist Stellar مثل امالی شیخ توسی امالی صدوق امالی شیخ موفی مثل این کتاب های دست دوم ها مول را شرالیه این کتاب های دست دوم ها هم در کتاب معانل اخبار صدوق آمده البته در معانل اخبار و سند آمده لیکن سندش خالی از اشخال نیست بلیکن چند اشخال دارد نهی که یکی اشخال ایک داره این کل اون که الان ما در کتاب خود ما داریم لکن این متن، غیر از حالا این کتابی که اصلا ظاهرا اصلا در کتاب به احتمال قدی سکونی بوده اما به هر حال به کتاب سکونی این مقدارش به ما ها اصحاب ما نقل نکردن ظاهرن و اصلا کتاب سکونی به ذهن ما همون جهریات یا هشهرسیاته توضیح حاضر شکر در جعفریات هم نیامده این هم ما چرا در جعفریات هم این قسمت حدیث نیامده و لکن یک کتاب دیگری داریم که او از جعفریات نمید کرده و از کتاب سکونی هم در کرده و اون کتاب دائم الاسلام این حد مرد ها تو دائم الاسلام آمده البته با عنوان وحفو یا عرفو از سبال که سبال اساساً در نوع تعرف سبره یعنی بریش نیخوره با که بریش هم اطلاق شده وحف و سبال که دیروز توضیحاتش اعرض کردیم دیگه احتیاج به تکرار نمید پس منابراین در مجموعه یا آثاری که ما داریم انصافاً این حدیث به سند معتبر وارد نشده این راجع به این قسمت کار رو و ها به خلاف اهل سنت آمد خب عرض یکی که از راها محصوب از باهای بروژیزی که اگر حدیثی به این سنت محصوب بود ولو در روایات ما نیامد بشه قبولش بکنه اجمالا حرف بدی نیست اجمالا انصافا حرف بدی نیست لکه تطبیر شواهد می میخواه یعنی صغراش شباید مثلا در اصانید پراوان داشته باشه کاملا جا افتاده باشه مجرد این که مثلا از صحابه نقع کرده نباشه و کاملا در هاشون مثلا لسانشون جاری بوده مخصوصا تو قضایه سیاسی نباشه یعنی مثلا شبه تغییر بود و لوازم دیگری که مثلا مثلا اصفه رو بلپرج فه این نبا از از بغمبر نور کردن که در فجر اسفار اسفار یعنی روشن شدن واضح شدن خود لبنز سفر در وقت حرم یعنی تسرن به اشتغال سریر از اون گرفته شد یعنی کبیر از اون گرفته شد اسفره به معنی بردر و از اون برداشتن اسفره و چه اسفار رو کنیم ما این رواته اسفر رو بلفج نداریم بایی که خیلی هم مشروع رو به نرسون ما نداریم اما صابره دیدم بعدم گشتم پیدا و اون پیدا نکردم در یک جا مثلا وانهله اِشعار اِشعار آمده نه این که اصل رو برسرچ این جورجا به نظر ما کافی که بگیم این کلمه در روایات اشعار داره به همون مطلبی که سومی روایات باشه مثلا ما در مانعنوی عف الله ها نداریم اما رو روایات ما زیاد در کافی یه با می‌گیم میگه لحی را ازش بگیر، از طرف آرزنه، از طرف پایین لغیه، ازش کم بکن، یا خودمون در لغیات، مازادن خبز فاو فنا، این منعشیه، منعشی که یک ذهنیت بوده که آن دراز بشه خبز آکه منوی که ایپر، که دان کلمه ی مطلب شد. اینی که این اصل این مطلب که باید محاسن مثلا ریش دراز بشه و افت بشه نشه اصل این مطلب مسلم بوده چرا؟ چون وقول این روزی ها تفسرش آمده باقید تخصیص میان تفسره اگه این که تفسرش آمده خب باید مفروغانه ام باشه که قانونش بوده دیگه آنه میشه تفسرش باید خدا قانونش در باشه دقیق بفرمید؟ پس شهرت روایت وجودش در افثانیت صحیحه در کتاب مشهوری اونها عمل خارجی اونها شهرت این محل و بعد در روایات ما تفسره اون قانون آمد خب میفهمن تفسرش این است. مثلا از ما از قبضه بیشتر ندر چون تفسرش دو روایات ما آمده اینا ها که با هم زن میبه کنیم انصافا به لحاظ فقی به نظر بنده البته از کنم ها رو کنیم که باید زهید بسا قبول نمی چون همه و درسته من از بلاحاظ سندی الان از کن خدمتون به لحاظ سندی متعارف مشکل برن لکه ما به جایی بحث روایی و سند داریم روح و خود مضمون زادن قبضه داره اجمالا چرا بد نیست از زیادن قبضه مطور مختلف داره من مصادر مختلف این اینشانا ارزو میکنم اونجا میشونی یه مشکلات خاص خودش داره که باید ارزو پس بنابراین میشه اجمالا روایت هر کله ها را قبول شن خب درقت بکنه یعنی اصل قانون با مسلم بوده یکی یه نداره. نداره وقتی میاد تهدید رو میگه تفسر رو می کنه اصلش مفهوم باشه وقتی میگه بیش از یه قرض نباشه من میگه یا مثلا میپرسه جایز من کوتاه عده کردن من جزئیاتش این بوده که عقد جایز نیست کوتاه‌کردن اصلا جایز نبوده رو کوتاه کردن نمیکنه بله خوب دقت میکنی من همیشه عرض کردم هر دلیل رو که میاریم عرضیابی شما باشه این دلیل میشه قدر ما نمیشه بگیم متن اعفالله ها ثابت اگر هدف ما اثبات متن اعفالله هاست اینو نمیشه با اثبات با تمام این مقدماتی که عرض کردیم اما اجمالا این که در شد بوده در ذهنیت مرد مسلمان بوده که محاسن دراز بشه این قابل تغییری نیست فهم پسره دادن که از قبضه بیشتر نشه یک تغییری داره به قبضه یک تغییری داره به عث سوال میکنن آیا میشه عث کرد نه ان شاء الله در بحث توضیح و عرض میکنن در باب کوتاه کردن ویش سه تا راعی بوده یکی اینکه نمیشه اونا به حدیث افعال ندید یکی اینکه میشه از دو طرف از عارضه از جلو نمیشه جلو رو و دو طرف دو طرف میشه کوتاه کرد. سه از هر طرف میشه هم از جلو هم از طرفه کوتاه بشه و مقدارش هم به حساب مقدار فرزه ان این بحثش خواهد آمد چون جلوگانه الان متعرض هم. این راجبی ما و نتیجه چی میشه میخوام خب نتیجه علمی اجزه نتیجه علمی میشه اگر متن اعقل الله ثابت نشود مثلا معنای اعفا چی؟ سوال مثلا عفت در اینجا چی بخشیدن که مراد نیستی بفارسی. مراد از اعفا الهیه چیه؟ ما این در معنای اعفا نعمل بکنیم همین مرحوم صدوق هم در زیر حدیث نعمل کرده نمیشه وغال کسایی معنا توفا اونجا توفا گرده توفا به اسطلاح لها یعنی تو وقت و تو کفرد ظاهرا معلوم میشه که از قرن دوم این بحث بوده که افایل لحیه دو معناورش تصویب شده نه نمیشن تو که دومان یکی معنی تطویر لحیه هست یکی معنی پرپر شدن لهیه هست او بگرد با هم فرق میکنه چون بردید که تطویر میکنه آخراش خیلی نازوک و در همبره هم میشه یکی پیدا میکنه این پرپوش کردن مراد من فکر می کنم چون نگیدم تا را کسی مثلا هدف کسایی ای این بوده که اعفاء الیه در حقیقت پرپوش کردنه نه تطویر فرق بذاریم بین توفیر و بین تطویر آیا اعفاء الیه و لذا اگه گفتیم مراد پرپوش کردنه باروات خبزن به راحتی میسازه یعنی که یک مردار از عبضه پرپوش بشه. نه اینکه هیزه کنیم بیاز کنیم برزی دیگه برزی که میگیدن خیلی دیگه بیشیش میشه مراد تطویل نیست تو این معنام من پریشاً محفظت شدیم که چرا موازه کساییی میباشه بله باز این ای تو تبر. بر این که میگه تو وقت فر مراد از توفله ها یعنی تو وقت فر تو وقت فر یعنی اصطلاحاً پرپش پر بشه یعنی بشه این جدیدی ها که بفرمایید جلیلیاتی با... که ریزی ببا که محاسن پر باشه که اکثر در روایت راجع به رومی رومی کانه تم لحیته و لهیتو اصلا عشری سینه حضرت میگرفت این قدر بود خود محاسن پیغمبر اکرم هم پر بوده پرپوش بوده در اون توصیف معروضی که اشایم بر اکرم هست که ما مشابه اهل سنی و شیعه نداریم ایشان پر بوده بنابراین خود دقت بکنید اگر ما گفتیم اعف و لها طبق این تصور ما اجمالاً ثابته این خصوصیات باش اثبات نمیشه اون نقطه فنید. این خصوصیات که آیا مراد توفیره یا مراد تطویله این یه دو امس کردن در بعد از روایات اعف و اثبات روایات ما آمد. این احتمال هست که سبال گفتن اون مقداری که از جلو و زدن آویزان میشه یا اون مقداری که از زیر در این احتمال هست که سبال محارم یه بیش پروپوسوری اون مقداری که تطویق میخواد همینیش پروپوسوری طرفه نه یعنی به عبارت اون آیا اون متن روایت سبال یا لحاظ در متن احل سنت اعف و لحاظ در این متن که ما داریم در دعاء الاسلام اعف و سبال شما ممکن است که توی سبال با فرق میکنه اگر میفرمونه عقل الله لها از این موی سر که متصل میشه تا آخر این کلا دریه است البته خود ان شاء لحیه داریم والیه لحیه لحی خود این اصطلاحه لحیه مویی است که این اصطلاح اصطلاح تکی پای رو له اخذر به لحیه لح یعنی این حسدخان زیر فک است حسدخان پایین این رسان لحیه میده لحیه اینه ولی ازا کلن در صدق لحیه میکنن شاید اینهای این بود که سبال باید اعتقال بشه نه لحیه یعنی بعید نیست امثال دارم الاسلام این زرافت رو ملتفت شده و به قصی اعف و سبال یه این اعف و لحاز. شاید صرف این که اصحاب ما روازه سکون نیوازه همون دوستوی روازه سکون سوال سبال بوده توی یک روازیگی هم کار بعد برد خواهی میکن انفقه داره یا انفقه انفقه این موهای دیر لب رو میگن روی چانه ماجا بدل انفقه داره به جای ماجا بدل عفضه در این نیست این روازیگی توش عنوان انفقه یا سبال آمده اون نکته رو این میدونستن اون محاسنی که باید تطریل بشه تطریل نه تطریل, تطریل. اون عبارت از این جلوه اما اون روایتی که اعفلده ها بود میگفت کل لحیه تطریل کل ممکن است این بزرگان ما این ذرافت ها رو در نظر گرفته بودن خیلی ذرافته اولا اعفو یعنی چی حالا یه آشان کنون وارد وارد میشی سانیه لحاظ یا انفقه یا سبال چون این ظرافت در این مسئله در ما کتور ما نوشته نشده شاید این ظرافت ها منشع بوده که روی نقل حدیث هیر کردند. اون وقت اگر ما بگیم رضایت عرف و ثابته این مقدار میگیم اجمالا این مقدار هست اما لحاظ یا سبال که در روایت ما آمده بعضی هاته احلوستان دیدم یه دید. خوندم اون سبال اون سبیل بود اما دیدم تو امون تو نحلوستان توی نهایی نسیر آمده که سبال منه این جلو جروع این نهایی نسیر رو خوندیم از کارم آمده این اصطلاح به کار برده شده آیا سبال یا لحاث اعفورانه تطویله یا اعفورانه توفیله محاسن رو پرپشت میکنیم این با قبضه بهتر میسازه و بنابراین در حقیقت روایاتی که از اندر به مقدار قبضه این ناظر به این باشه که مطلوب رسول الله پرپشت بودنه نه اینکه که بزن که یعنی دراز بشه تقرق میکنیم اونی که مطلوب بوده اینه به عبارت مخلاق محاسن باشه به مقدار معتنابه را پرکشت باشه این معنای اعفله ها به هر حال مضافتن به این که در های اعفله ها به معنای وجوبه یا نمی استحباقه روشت رو سه تا نکسه مشکوکه تو اعفله ها اگر ما عرض کردیم که اعفله ها رو من حیث المجموع از دوات اهل برگدر رو بردیم بخارج. این سه حل نمیشه. چون سر این اینکه در رواره نامده تفسره آمده بیشتر بیان این جهت بوده دقت می کنم. این سه نکته واضح نمیشه تو ارف الله ها بله اهل سنت چون ارف الله ها دارن و به سرد سهی دارن اونا بحثشون جا داره و لذا علیه از اهل سنت تصریح می که کوتاه کردن رویش جایز نیست حتی طرف این چون اونا روایتی که درش طرف این داره دارن روایت چه می‌گیم امام درواش رسول الله یاکل من لحیتی من عارذ اینم داره در اون سند چه گیری داره خود ترمذی هم میگه من از بخاری فرستادم شون ادعی از رواش ترمذی واقعاً در من خود بحثان یک ای جهت این چیزش همینه یک تحریراتی به را داره و بخاری اشکالی داشت اون سند اگه به ترمذی مراجعه بشه ترمذی که در, در لباس برده. این دو مسلم بخاری روایت نمیکنه که کان رسول الله یه اخرم نبویتی یه عارضه تقریباً کوتاه میکرد. هر کلی اهل سنت همین را واژه معتبر در کوتاه کردن از عبدالله بن عمر آورده. از سیقنبر هم دارن، تغزلم از عبدالله بن عمر دارن. اما از رسول الله نداره. و نگاهی ادیشو گفتن نمیشه گرفت، پسا کوتاه نمیشه گرفت. نه از طرفه نه از جلو اعفار و معنی تطویل گرفتن و این تفسرن پیش اونا ثابت نشود. شاید در روایات اهل بیت که روی تفسره تأکید شده شبا اون نقطه فنیش این بوده اصل مطلب اجمالا ثابت یعنی اون اصل مطلب که اجمالا ثابت حرمت هر این اجمالا ثابت اون حرمت هم این اجمالا ثابت که حالا برداریم شما سوزیادشی بیشتر هرزم اما این که آیا خود این مردن ثابت باشه هم رسول الله الان توی روایات اهل بیت نیامده اعفالله ها اعفالله هم نیامده ما اعفالله ها رو فقط در فقیق داریم و معامل اخبار خدو اعفالله هم فقط در کتاب دائم اسلام دیگه جای دیگه نداریم این خلاصه مطلبی که در اینجا لازم بود گفته بشه. پس حواله بین ما و اهل سنت هم گوشن شد اهل سنت رو کلمه اعفا با دست بکنن این بحثی که راجع به سوال گفتن راجع به لحیه هم هست گفته شد اصلا لحیه همین جلوه این آرزه میگن کار یه خود من و آرزه این هم گفته شد این بعد عرض میکنم که اصلا لحیه فقط خصوص جلوه یا کل این موهای که روی اینم این دارم. بحثی که ان شاء الله باشه. خب بفرمایید. در با حالا این یک بحثی داره که بعضی از که ما در شراحت داریم. شاید لسانش از حرامام شدی باشه. این ما داریم. این ادبیات حقوقی ما هست. بعضی از مستحبات لسان در شدت از لسان واجبات بیشتره. حالا با قول مرموم استاد ناید بودین همون خود مواجبات حالا انجام بوده برای مستحبای که تحقیلی باشه شدت انجام شده خدا <تحسن> شده که فنار آمده اما مثلا نار مثل توگوشی مثلا نه اینجا لابه کلی که ما دادران لفته حرام باشه خیلی خورمت ریشتراشی دارم یکی اگه خیلی بلند حرام من که این ریشت حدیث هایی گذاشته نیمی شده نه صابدی گذاشتن توی شماره چهارشنبه را بوده اعدادی باب یا جا... ادامه جاده هرگلهره رو از لساهل بخونی در این چاپ جدیدی که من رویم سهصد صد و شانزده جلد دوم حدیث باب 67 از ابواه آذاب و حدیث شماره چهار از که در مربوطه کلینی حدیث در ها رو نیومده اما در کتاب و اصول کافی در بحث اصول در بحث امامت کتاب گجت یک روایت آورده خب اینم مشهور شده این دواره. اون روایت واحده ایه که محمد بن یعقوب عن علی بن محمد مرووم شیخ کلینی دو تا استاد داره نام علی بن محمد این ابن بندار علی بن محمد ابن بنداره که این همون ماجلیبی به اصطلاح پسر این پسر این علی اسمش محمد بوده محمد بن علی ماجیلوی پسر استاد صدوق پدر استاد کلینیه و محمد ماجیلوی هم خود علیه لقب علی یا بندار از باید پدر ایشون هم مشهوره روزه اجلا قمود محمد و داماد برقی ایشون نوی برقی علیه به بن محمد بندار اصطلاح قومیست اصطلاح فارسیست شاید مثلا یعنی تجارتخونه یا مثلا بنگاهی داشته چیز داشته یه خیلی مونمون باشی علی بن که منوی ریش در پارسی و دارم که بلا مثل انبار دارم بندار شاید مثل انبار داشته چیز داشته شاید مثل این علی بن محمد یک توصیل خیلی واضح واضحی نداره اجمالا بر نیست پدرشون جزا عجل راست پسرش هم توصیل مداره محمد بن حلی علی بن محمد بندار ابن محمد ابن اسماعیل ابن موسی جعفر البته یه جاری هم داره مرحوم کلینی علی بن محمد میمیند ابراهیم فلان الملقب به الاعل کلینی اونم از مشایخ ایشانه احتمالاً که اون هم باشه هست بعدا من با مراجعاتی که برداشتم دیگه دوست سه تا علی بن محمد دارین به این طرقه میخوره که احتمالا مثلا کلینی از اونا نهار کرده باشه اما در مشایف ایشان همی دو نفر رو بیشتر آورده، بندار و اون علان کلینی که دایی ایشان میشه خیلی توسیقاتی که جز اجلای مشایف ندارن هم باشه محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر در کتاب کافی چهار تا روایت هست از این علی بن محمد دو تاش اینجوریه ان محمد ابن اسماعیل ابن موسی بن جعفر این یکیشه دو تاش اینجوریه علی ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل بعدا در یکیش اینجا نداره در یک دیگهش اینطور داره علی ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل بعدا جو مکان اصل شیخ رئیس اون منبره هاشا در عراق اون آقایش استاد کلنیست اینطور توصیف کرده اصلا نشه ایفرن رایی تو مندنی مندنی هاشن به اران لیکن دو تا دیگه اش محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن موسن جعبه حالا دیگه اون دوییم یا کلشن همین چهارتاست کلشن همین چهارتاست طبعا ما با ایشن آشنایی نداریم با اسماعیل ارز کنم در بحث جعبه یا شواهد نشون میده که اسماعیل. اگر این اسماعیل اسماعیل اسماعی اسماعی پسن باشه. ایشون از مدید رفتن مصر و چون زمانی که ایشون رفتن مصر زمانی که اسماییلی ها ادعا می حرکت مخیانه خودشون رو همه ست رو برای تأسیس دولت شیعی در مصر انجام میدادند. این احتمال که این اسماییل پسر امام کازم علیه السلام چخصیتی هم مدرس در سال دیست ده که دیگه مرد بزرگی بود و خورده سال همه شده قطعا امام زاله هستان داشتن که بر جنازه یونس صفوان ابن یحیان نماز بخونه علیه نکن و این خود شخصیتی ایشان ایشان برمیره مصر احتمالا به اصطلاح نوز ما جز این حرکت های انقلابی به اصطلاحی ها مثلا یه نوع مثلا تشکیلاتی بوده شخصی بوده چون این, این اصلاح اهل خود ادعا دارن که این فتره ما بین 150 و پنجا که اسماعیل اول مروفه تا سال سی که حکومت فاطمی ها در مصر آمد استلاحشان اعمه سفر میدن اینا در تشکیلات دولت دولت فاطمی ها در محصر در زندگی به حزبی و محرم و زندگی مخیانه و ظاهرا ایشان در مصر زندگی رفته در مصر به این جهت، چون بعد منجر شد به تحسیسه یعنی مثلا ایشون با سالهای دویست و, دویست و چین سالهایی باشه به مصر و از این سال تا تشکیل حکومت شیعه در مصر هشتاد ساله فاصله زیاد نیست خاصله خیلی طویلی نیست در حوادث تاریفی که حکومت معروف و فاطمی های مصره. استراحتن اسماعیلی بیشتر میگه اسماعیلی هستن. اینا تأثیرشون که از کم اولین حکومت که رسما فقه فخیم ما مصادره ولی جوابی رو داده نمیده. آنها حکومت. اینا خودشون آخودشون شامی دعاییه که دعای من فخیم ماسیه یعنی میگه. تقابل توی دل خیلی زیاد نیست که من این آزاد بنشینم. هر زمان که دقت بفرمایید، اما این اسماعیل نمیذارم. این اسماعیل الان من گیر دارم به، نبیدن این اسمایل همونه اگر اون باشه محمد نبیدن چون مرمون نجاشی در شرحال اسمایل سکن هوب و ودهو به یک پسرش که موساس اون که رفته مصر که همون جعفریاتو موسا نقر میکنه که دیروزم گفتیم موسا پسر اسماعیل پسر موسانو جعفر سامان این کسا که مصری هست این, این محمد آیا پسر همین اسمایله یختره از اونم علی محمد میگه اصلا شیخ رایتو من بنی هاشم بری عراق وقتی مصر اگه اون, اون با چیه که بچه اون بابا باشه چون اصلا حمزه این انقلابی های نبود که مصر بده به اون حرکت نهرمونو بیام مصلاانه و, بیان و اون از این میذارم فرضین تشکیلات حزبی این نند یا ایشان اسماعیل پسر ابراهیم پسر موسی نجفره بین دیگه اون نمیشه کلم کلا ما از این آها چهار تا حدیث در کافی داریم سندم یک نفره اونم علی بن محمد تو دو تاش این محمد پسر اسماعیل پسر موسی بن جعفر اونم میشناسیم اسماعیل اما توی دو تاش این محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی یه جعفر ابراهیم تو وسطش داره دیگر می‌بینی اصول و جایه این خواجه دارن که اصل آدم زیاده مقدم بر نوشته گسید سخت شده این یه سری سخت ما نمی‌دونیم ما خودسا نمی‌دونیم این سخت داره یومی کی دیری بره به هر حال ما به ویشن آگاهی ندیم آگاهی ما همین حده کل آگاهی ما به این محمد بن اسماعی کلام علی بن محمد استاد کله نیست حالا این علی بن محمد که از اون دو نفره یا ممکنه شخصی دیگری باشه این من خیلی مطمئنمیشم که ازدواج کرده باشه. آن احمد ابن القاسم، اجلیان احمد ابن یحییا، اینجا نویسش چاپ کرده خدایی، آن محمد ابن اونی که در کتاب آمده خداییه، نه که لغت فارسی هستیم نیست. آن عبدالله ابن عیوب، آن کدی عب... عجیبه، یعنی اینقدر واسطه. آن عبدالکریم ابن امرحاتعمی، این عبدالکریم میشناسیم. از واقفیه بوده معروف بوده اما این در رسوه مثلا مشایخ فرسوی مثلا میگه برکیده استاد بزندیه همین اول کریم نباید قا... اینقدر واسه بخواد بکنه تا با استاد بزندی برسه نمیدونیم الان سند رو کلا نمیشناسیم یعنی ابهام ما ابهام کلی ساجه به سند انه و حبابه والهیه خانمی بوده ادعا شده که از زمان امی رو می خدا باشه تا زمان هسته حادی ظاهرن یا از کری هنگوسته یا دوسته هر امامی رون به اصلاح نقص و امضا می کردن هر حال این سندشتون بحث امامت رو می این رو ما الان نمی داده اینه که رعیت و امیر المؤمنین علیه السلام شرطت یا شرطت الخمیس یا شرطت الخمیس شرطت خمیس سالی دقیقه تلفز دقیقش و معنی دقیقش چون معانی گفته شد دیدن نیم خواهد و معانی بشه واضح نیست ظاهرن یعنی نه که ظاهرن واقعا مرادش شده خمیسی مشت... یکی از افراد خاص و از خواب خاص در که به اصطلاح ما میگیم مثلا چی میگرم مثلا گروه هم مثلا گروه گروهی که گروه هم گار تقریبا حالکه گار یا مثلا محافظین مخصوص مثلا اون کسانی که پیش مریه بودن گروهی بودن که کاملا به لحاظ عباید اینها در اختیار انون به قول اونها گفت که ما صوفیه خمینی سیگومون گفت ما نمیدونیم چی که شما میگید اما این اون به هر کسی میگه برو پوشین کوشین شرطی نبود پس این شور از خمینی ظاهرا مخصوصی بودن احتمال دادن مرادی نیروهای مخصوصی مال ارتش بودن یعنی نیروهای زبده ارتش بودن چون خمیس رو گفتن چون در اصطلاح قدیم من چند وقتی هم عرض کردم این در جنگ ها در میان عرب نبود اولین بار تقریبا زمین این جنگ رو بعض از معرخی به خود رست رو در جنگ بعد نسبت میدن و که تقریبا اولین جنگی یکی تقریبا یاد جنگ چون عرب ها همجور هم میکردن قاره به خود حجور قاره همونطور که صورت جنگ و نظام و هرکش و اینها یک مقدار مقدماتش در همون جنگ خندر شد که میگن یعنی سلمان فارسی یاد من رو که چون اینا اصلا برد در خندر زدن و حمایت رو میتوند حالا ازورس کردن و اینجور نبود و میگن عمرم وقتی دید گوه نها روی مکید از اون لای عرف و عرف ما چین چیزی رو بلد نبودیم این هم مثلا آینه ایرانی رو موید دادم در هر حال بعدها اون شکل نظامی که ایران و روم در جنگ داشتن توی جنگ اسلامی هم آمد دیگه خود زبان از عمر دیگه اینا آمد و اون اینطوری بود یک مقدمه بود که تلیعه بهشون گفتن مقدمه توجهشون گفتن بسل تلایه تلایه التش فارسی بود تلایه تلایه بود. بعد یک غرب بود تنظیم بعد دست راست بود دست چپ بود و یک مرکز هم بود پنج قسمت میکردن ارتش رو خمیس بشم فتن یج کردم شواهد نشون میده این اصطلاح منشأش چی بوده در کوفه بوده از کجا آمده مراد یک نیروهای خاصی که فدویان حضرت بودن فداویان حضرت, بودن. حضرت بودن. یا بسل بعض یا ار بله و محبود در راتون در تازیانه لها سبابت ها اینجا سبابه با سبابه اون به اصطلاح چیزه سر تازیانه دوتا سرداشت بست یبر برده ها بیای الجری و المارماهی و زمان این که فارسیه جرری اینه نوع ماهی هستند که بیفلس از از بینام که اینا نفروشی انواع ماهی های بیفلسن. و یکبور لهم هم یا بیای مسوخ بنی اسرائیل. اینا به خاطر اینکه ماهی رو در ما روز شنبه می گرفتن که در قرآن هم آمده اینا میگن این امام می این ماهی اینا, اینا موسوخ هم و جند بنی مروان این جند بنی مروان الان از آن اگر مثل درست باشه مثلا هارون باشه چیز دیگه باشه حارون باشه مثلا جند بنی قارون مثلا, مثلا حارون می حضرته موتابطه مروان نسبت به بنی اسرائیل و به ماهی و بعد از زمان حضرت بنی مروان سر کار نبودن چون بنی مروان از مروانه نه حکم آنا چون خود معاویه از بنی امیه است بنی امیه بنی مروان با هم گفت سرموه هستن نزدیک هم همه به هر حال بنی امیه معاویه هست و پسرش یزید است و پسرش معاویه بعد از بنی امیه تبدی شد به بنی مروان اول مروان بن خودش تو دوره کوتاهی بود بعد پسرش عبدالملک عبدالملک بن مروان که یکی از اضاصرل بزرگه امپراتر بعد اهل به اساس خلفای یعنی امرا هست و بعد پسر هاش شخوان عبدالملک اینها خیلی محاوند بعديها بن مروان بن رسان تو شده یکی دوستان بنی امویه هستند که مروان اول امیه است بعد مروان رساش بنی امویه باز باز, باز, باز جنگی به بنی مروان اما اینا به زمان از فرمیدی و توضیحی هم نداره نیمی فهمی چیه فقام علیه قراطب احناف را قال یا امیر المؤمنی و ما جند و بنی مربان این بنی قارون بوده قال قال اقوامون حلق و الله و فتر و این بیشتر میخوره مثلا به استراغونزه هم به مدیوسی ها که بودن سوال کسی ها این کلمه چون سر رایت روشن نیست همچین روشن نیست این کلمه بنی مروان و اصلا گفت شنه نزولی شده اینجا نمی پهمید شد این حدیث و حلق و الله و فتل و اشتواره محمن الان هم کردم در لسان روایات ما گاهی بر ادبیات قانونی ما اینطوری. به لحاظه اثر هک اثری که برای شما مثلا چون مسخ شدن پس حرامه اینجوری و اهده ای از بقای ما اون دفعه که اقوال رو خوندن از اقوال که, که بایی نیست بیشتراشی اصلا حرامه از کبائر باشه اونایی که اثبات کردن کبیره نظرشون به هم میگن میگن چون مسخم شده پس جزای کبائره و کبیره ای به معنی این که قوعده علیه به نار نداریم تو ر این یعنی بیان چون این آث شده برش بر مصخ شدن از جز کبائر هم هست هم حرام هم, هم جزو کبائر است در ضمن دلیل دیگه ای نیست البته دقت حالا شخص ثاندر و شهر می ده اصولاً بعد به استراح آثار و آثار عقوبتی بر بامن سابقه میون به بنی اصرای آمده مثلا لوک املووز برشون جوری با ذ میشون بالا بر رو چپه کرده برگردون رو خب من از کممسابقم در عنوانه گفتن اون کسی لاس کرد همون از اون استفاده کردم توصبح تو جروری زنگ وش برگرده این گذارن بر بالا کو پرتش می پایین دیوار درست اون دیوار رو دیوار خراب کرد رو اون اثری که در جوریی تو شنیدی؟ من از کار این صحنه اثبات مادی و پنومی با ازوابهای دنیایی که برای آماده سازی شده خیلی مشکله اصل این مطلب مشکل. شاید بیش از هر مطلب اثبات کند. اما اثبات مثل بگیم همچنان که اونجا ایفاره ما مادی کسی تو خونه بگوییم بعد بر جار ترکیم خونه دریم ولی چقدر کلو خورده شد؟ چقدر دهکم آمیل؟ اثبات این مطلب خیلی خیلی مشکله. به گفتمونی. اسوات حرمت بد نیست اما اسوات این خصوصيها خب چطور ممکنه اینا مثلا چون جنب بر این نرمان بودن این کار کردن یا چون ماهی در میشن بگیرن یا چون افراد بسیار بدی بودن این که عذاب بر اصلا اثباتی که عذاب بر اسوات اون چهیل به خصوص اون هم خالی از اصرار نیست این روایت رو مرحوم صدوق در کتاب اكمال الید در کتاب احادی به اعتبار عدد اهمی در کتاب اومده از علی احمد دقا دیدم گذار مشایخ صدوق که نمیشنسیم احس کردم سابقا مشایخ صدوق به شناختن و نشناختن اون مقداری که میشناسیم خیلی کمتر آز, از اون مقداری که نمیشنسیم این ما شاید کلن, کلن از مشایخشون چیزی بوده همپشت ازتاده دار میشنسیم بقیهشون نمیشنسیم خیلی نسبتش پایین. بله از مشایخ شناخته حدیثش بیشتره. از به لحاظ شماره حدیث میگیمی چون از تلرشو ابن ازلیم زیاد حدیث نهار کرده از این مشاهیشی که این از در میشه یکی یا دو سا تر عدد از درد بیشتره از مشاهیش مشبور لیکن به لحاظ مجموع روایت انصافه اون مشاهیشی که میشنسیم بیشتر زن آره من آمار ندارم آن درمیم الان علی ابن احمد درقاق از مشاهیشی ایشانی که از ن این هم یه مقدار ابهام داره من سابقا توضیحات کافی حد کردم مرحوم کلنی به لهابه قوم مثل پدر صدوق در یک سال گفتن البته ظاهرا کلنی زود از صبح احمد دینو به خارج بغداد صدوق ایشان درس نکرده ولی با واسطه ایشان نرم می‌کنه از سرچ نرف می‌کنه اما از کلنی به واسطه من هم هنوز من نمی‌دونن خود من دیگه حالا علین مسنا شریفی شاهد مشایخه مشهور نرف ابن و ابن ورین که استاد ایشانه حالا ابن ورین از کلینی قبول نداشته از چون ابن ورین زود 15 سال 14 سال بعد از کلینی وقتشه هایا در قول در این وقته مشهور نبودن؟ اونی که و معظم روایاتش از کلینی ایشان در از از ایباله 90 سال از زیر نبودن محمد بن محمد بن عسام کلینی یا هم است این هم نمیشه بعدی از این هم به علیه دقاق این هم یک جایی، چند جای من هم دو تا یا سه تا آورده. یا سه تا یا چهار تا. همشون نمیشه. در این تمام این ها در یک درجه هست. یعنی به عبارات موقعا مشایخ درجه دوسه قوم هست. احتمالا مشایخ خودش هست دو ما ه ولی اینا رو نمی‌شناسین چون خود هیچ تمام رسائل بین صدوق و کلینی رو نمی‌شناسین. لكن مؤذر روایت محمد بن محمد بن احسان مؤذر. چطور نمی‌شناسین؟ این چیزی که ایندرا نمی‌شناسین، دو تا دیگه هم اصلا خدا رو نمی‌شناسین و چه به قدرت نمیدونید؟ آیا واقعاً در قوم کلینی کتاب نقد نکرد، اینا نمی‌دونید. چطور میشه قوم چون کتاب در قم تعریف بکنه. امام تکو علما بزرگان علیشون نارم که صدوق مجبور در درجه 2 و رو اینا